از آتش ما دود کجا بود اینجا و از مایه ما سود کجا بود اینجا آنکس که مرا نام خراباتی کرد در است خرابات کجا بود اینجا بوت گفت به بط پرست که آب ما دانیز چروی گشته ای ساجد ما بر ما به جمال خود تجلی کرده است آنکس که ز توست نازره شاهده ما تابتوانی مگردان کس را بر آتش خشم خیش من چان کس را، گر راحت جابدان تمع میرنج می همیشه و مرنجان کسرا. را. ای کرده به لطف قهرت و سن خدا، در عهد ازل بهشت و دوزخ پیدا، وزم تو بهشت است و مرا چیزی نیست، چون است که در بهشت ره نیست مرا.